کروگه جوان و فرهنگ به نام خدایی که مهربان است و یگانه سلام بر شما دوستداران فرهنگ و ادب ایران زمین خوندن و شنیدن افسانه یکی از نیازهای روح آدمیه نیروی تخیل و تصور مردم و باورهای آمیانه افسانه هایی رو خلق میکنه و راویان و نویسندگان افسانه اونها رو قالبریزی میکنن حتی در کتابهای آسمانی هم قصه ها و افسانه هایی برای ارشاد و عبرت مردم نقل شده افسانه رو که این هفته در برنامه حسان براتون نقل میکنم افسانه ای ایرانی به نام اسماعیل چاوش برگرفته است کتاب افسانه‌های کچل به گردآوری محمد رضا شمسه روزی روزگاری پادشاهی در سرزمینی دور حکومت میکرد پادشاه وزیری داشت که خیلی ادعای فضل و دانش میکرد روزی پادشاه اونو نزد خودش فراخوند و پرسید وزیر بگو ببینم اون کدوم خوراکیه که نمیشه اونو خورد کدوم اسبه که نمیشه اونو اسب نامید و کدوم آدمیه که نمیشون اونو آدم خوند وزیر که انتظارشون این سوالاتی رو نداشت با دستپاچگی گفت قبله آرم من این من این سوالات من پادشاه که متوجه دستپاچگی وزیر شده بود گفت نه نه نه الان پاسخ نده من به تو چهل روز مهلت میدم اگه جواب این معماها ها رو ندادی باید سرت رو بدی وزیر از این حرف پادشاه به حراس افتاد و یک ماه تمام کوشی جواب معماها ها رو پیدا کنه ولی به نتیجه نرسید که نرسید اون فقط ده روز دیگه از عمرش باقی مونده بود یه روز وزیر پریشون و نگران تو جاده داشت خدم می زد. دید کچلکی نشسته کسیف و شلخته وزیر با دیدن کچلک آب دهنش رو بر زمین ریخت و خواست از کنار کچلک بگذره که یه دفعه سلای کچلک بلند شد آی وزیر صبر کن صبر کن با این کجا میگه ها؟ تو فکر میکنی از من آقلتری؟ وزیر خواست چیز بگه ولی کچلک ادامه داد میدونم میدونم که پادشاه معمایی به تو گفته و نمیتونی جواب اونو پیدا کنی و, و بهزودی هم سرت رو باید بدی آه. وزیر از شنیدن این حرف از حیرت خوشکش زد نزدیک کچلک اومد و گفت تو تو از کجا میدونی کچلک جواب داد تازه اینم میدونم که فقط ده روز از عمرت باقی مونده آخ آخ آخ وزیر با خواهش و التماس گفت کچلک جان لابد جواب معماها رو هم میدونی خواهش میکنم خواهش میکنم اگه چیزی میتونی به من کمک کن خواهش میکنم کچلک پوست خندی زده گفت که خواهش منی ها؟ وزیر با لحن مأسومانهی جواب داد بله بله کچلک جان خواهش میکن کچلک گفت من جواب معماها رو میدونم وزیر با خوشحالی گفت واقعا تو تو جواب معما رو میدونی؟ کچلک گفت البته که میدونم بیا بیا بریم زیر اون سایه درخت تا جواب معماها رو برات بگم و جونتو نجات بدم وزیر با خوشحالی همراه کچرک به طرف نومندی که اون طرف جاده سایع کنده بود رفت چرک زیر سایه درخت روی تکه سنگ نشست و به وزیر گفت خوب گوشکان خوب اون خوراکی که نمیشونو خورد خیاریه که در سایه رسیده باشه و از صبح تا به غروب نور خورشید به اون نتابیده باشه این خیار تلخه و قابل خوردن نیست وزیر با خوشحالی گفت درسته درسته کشرت جان خب ادامه بده فچلک ادامه داد عصفی که نمیشه اونو عصفون عصفیه که پای چپ و دست راستش سفیده و رو پیشونیش یه لکه سفیده چون این عصفی بد قلقه. اون مرکبی معمولیه که هر هرچند ظاهرش اسبه ولی نمیشه رو اسب دونست وزیر با تجب گفت عجب خب بعدی حتی چه جان کچلک گفت اون آدمی که نمیشه آدمش گفت مردیه که زن بگیره هم. ولی هیچ احساس مسئولیتی در مقابله اون نداشته باشه و با تنبروری داماد سرخونه بشه وزیر خوشحال شد و به شتاب راه قصر رو در پیش گرفت و از کچلک هم تشکر و سپاس گذاری کرد وزیر به قصر رفت و جواب معماها رو به پادشاه داد پادشاه رون رو گفت یک وزیر اگه با عقل خود جواب معماها ها رو پیدا کردی چرا روز اول جواب ندادی حالا حالا بگو ببینم چه کسی جواب این معماها رو به تو داده وزیر اعتراف کرد و گفت قبله یارم کچلک یادم داده اون خیلی باهوشه پادشاه سری تکون داد و گفت برو برو و این کچلک رو که میگه خیلی باهوشه نزد من بیار وزیر رفت سراغ کچلک و اونو نزد پادشاه آورد پادشاه نگاهی به اون انداخت و چیزی نگفت و دست به گوش خودش بود کچلک در جواب دست به شقیقه خودش گذاشت پادشاه قاه قاه خندید و گفت گچلک چرا دست رو شقیقت گذاشتی ها؟ گچلک <مادم> گفت قبل یالم دسارتن شما چرا دست به گوش مبارکتون بردید ها؟ میخواستی بگی تماشا کن چه اجایبی در دنیا پیدا میشه و من دستم رو روی شقیقم گذاشتم و جواب دادم که عقل آدمی در سرش نه جسارتن در گوشش کچلک در برابر پادشاه نشست پادشاه ازش پرسید خوب حالا بگو اسمت واقعا کچلکه کچلک لبخندی زد و گفت <تصفيق> نه قبل یالم اسم واقعی من اسمایل چاوشه خلاصه کچرک و پادشاه از هر دری صحبت کردند و کچرک حسابی توی دل پادشاه جا برد. پادشاه و کچلک یا همون اسماییل چاوش گرم صحبت بودن که یه دفعه پیکی از طرف پادشاه همسایه به حضور پادشاه رسید و گفت پادشاه به سلامت باد پادشاه همسایه فرموده باید بیدرنگ دخترتان را به عقد و ازدواج او در بیاورید پادشاه ساکت بود وزیر چیزی نگفت اهل دربار مهر خاموشی بر لبانشون زده بودن. کچلک یه دفعه گفت امیدم! دختر به پادشاه شما نمیدم. وقتی پی که پادشاه کشور همسایه این چفاب رو شد ای روی زمین رست کرد. اسماعیل چاوش یا همون کچلک افثانه ما از جیب چند مهره در و میون اون دایره انداخت قاپسید و پیک پادشاه همسایه چیزی نگفت و خاموش برگشت و از قصر خارج شد. پادشاه از کچلک پرسید: کچلک اینها چه معنی داشت؟ اون ها یعنی چی؟ اسماعیل چاوش یا هم کچلک ما جواب داد: قبل عالم تو که این چیزای ساده سرت نمیشه. چطور مملکت رو اداره میکنی ها؟ اینکه پیک پادشاه دایره‌ای بر روی زمین رسم کرد معنیش این بود که شهر رو محاصره میکنن و اون مهرایی که من وسط دایره انداختم خواستم به اون بفهمونم که ما هم جنگ میکنیم. پادشاه از شنیدن این حرفها سخت به فکر فرو رفت. چند روز بعد پادشاهی کشور همسایه سه شمشیر برای پادشاه ساد که هر سه شمشیر یکسان بودن. و از پادشاه خواست که به اونها بگه کدوم شمشیر متعلق به پادشاه کدوم متعلق به وزیر و کدوم متعلق به وکیل همه شمشیر رو نگاه کردن ولی چیزی متوجه نشدن کچرک ای ما گفت این که کاری نداره من براتون میگم جریان چیه و بعد همه برای شنیدن حرف ها کچرک به دورش حلقه زدن و بی منتظر شنیگن شدن کچرک <موسیقی> شیر اولی رو توی آتیش انداخت تیغه اون تیره نشد و جلای خودش رو حفظ کرد کچلک اون شمشیر رو کنار گذاشت و گفت این شمشیر مال پادشاهه شمشیر دوم رو رو آتیش گرفت فقط نوک اون سیاه شد اسمایل چاوشی همون کچلک گفت آه این شمشیر هم تعلق به وزیره اما وقتی سومی رو نزدیک آتیش برد سراسر تیغه اون یه دفعه سیاه شد چاووش چاوشی همون کچلک گفت هم؟ اینم شمشیر وکیله خلاصه این مراتب به عرض پادشاه کشور همسایه رسید اون از عقل و حشیاری درباریان کشور ایران در حیرت افتاد و این بار دوتا مادیون همرنگ و همقد فرستاد و از پادشاه خواست که بگه کدوم یک مادر و کدوم بچه هست همه فکر کردن و هر کدوم حدسی زدن ولی هیچ کدوم جواب درستی ندادن انگار هر دو اسب یکی بودن کچلک افسانه ما گفت من میتونم تشخیص بدم که کدوم مادیان مادره و کدوم مادیان بچه بادشاه با تحجب پرسید آخه جوری؟ اونا کاملا شبیه هم هستن کچلک انگار یکیان. هستن کچلک جواب داد درسته انگار یکی هن. آره. ولی من الان براتون میگم چه چجوری اونا رو ازم تشخیص بدی کچرک به درباریان گفت که دومادیان رو توی طویله بندزن و در رو به روی اونها محکم ببندن و هر چقدر که یونجه خواستن به اونا برن فقط آب بهشون ندن و دمادیان رو به مدت سه روز توی طویله نگه دارن و روز سوم اونا رو رها کنن پادشاه پرسید خب بعد از کجا بفهمیم که کدوم مادر و کدوم بچه؟ کچل جواب داد. مادر حتما جلو میره و بچه پشت سر اون. خلاصه این کردن و مادر و بچه اسب مشخص شد. پادشاه همسایه یه بار دیگه تصمی گرفت عقل و زیرکی پادشاه ایران را آزمایش کنه و یه لوله مارپیچی چهل متری براش فرستاد و گفت که نخی رو از درون اون بگذرونن و دوسر نخ رو به هم گره بزنن همه یه اخل دربار به دور لوله گرد اومدن و فکر کردن و حدس ها زدن. ولی کسی چیزی به عقلش نرسید اسماعیل چاوش یا همون کچلک افسانه ای ما این بار هم گفت ها من می چیکار باید بکنیم نخی دراز و کمی اصل و تکه موم چاره کاره پادشاه دستور داد که فورا نخ و اصل و موم رو بیاران و درباریان در عرض یه چشم هم زدن اون چیلو که مورد نیاز کچلک بود آوردن کچلک سر نخ رو به اصل آلوده کرد و تکهی مون به اون چسبوند و توی لونه موچه انداخت یه موچه سواری بزرگ تکه مون رو گرفت و نخ رو هم دنبال خودش برد و از طرف دیگه بیرون آورد دو سر نخ رو گره زدند و برای پادشاه همسایه فرستادند پادشاه همسایه چون چنین دید یه قاصد دیگه فرستاد که چون اسب‌های ما در اینجا شیحه میکشند، معلوم است که مادیانهای شما از آنها باردارند بنابراین هرچه بدون دنیا بیاورند مال ماست ما پادشاه خوشش زد نمیدونست چه جوابی بده گچرک گفت پادشاه به سلامت باد ده پونزده نفر آدم شجا به من بده تا نزد پادشاه کشور همسایه برم و جواب درست و شایستهی بهش بده پادشاه هم بیدرنگ پانزده نفر از نیرومندترین سربازای خودش رو به کچرک داد و کچرک و سربازان سوار مرکبهاشون شدن و به طرف سرزمین همسایه به راه کچلک و همراهانش رفتن و رفتن و رفتن همین که از مرز گذشتن کچلک به اولین کسی که برخورد کرد گفت برو به پادشاه کشورتون بگو که ما تمام سکهای این سرزمین رو کشتیم این خبر در عرض چند دقیقه به گوش پادشاه رسید پادشاه هم دستور داد که کچلک و همراهانش رو دستگیر کنن و به قصر بیارن یکی از سربازان همراه به کچلک گفت قربان ما که هیچ سگی رو نکشتیم پس چرا این پیام رو برای پادشاه این کشور فرستادین دادیم؟ کچلک جواب داد بله ما هیچ سگی رو نکشتیم ولی این حرف رو من از قصد دادم حالا منظورم رو از گفتن این کار نکرده میفهمین خلاصه پادشاه دستور داد که کچلک و همراهانش رو به قصد را بردند پادشاه اونجا از کچلک پرسید چرا همه یه ملک منو کشتی؟ کشلک جواب داد، سکه تو به درد هیچ کاری نمی‌خورن قربان پادشاه با عصبانیت گفت، این چه حرفیه؟ به چه دلیلی؟ کشلک گفت، آه، من توی ده خودمون گوسفند می چه یه دفعه گرگی به گوسفندا حمله کرد. هر چه سگای تو رو صدا زدن به کمکم نیومدان و گرگ هم گوسفندای منو خورد. پادشاه فریاد زد این چه حرفیه که میزنی؟ عقلت کجا رفته؟ از اینجا تا ده شما یه ما راغه. چه جوری ممکنه سگ‌های من صدای تو رو بشنون ها؟ چرا گفت چه جوری؟ همونجوری که اسبهای شما اینجا شیهه میکشن و های ما اونجا باردار میشن. پاچا از این پاسخ شگفت زده شد. مکسی کرد و بعد زد زیر خنده و گفت: <تصفيق> آ اسماईल چاوش برد با تو. این بار هم تو هم بردی. <تصفيق> به بعد با گشاد دستی کشلک یا همون اسماعیل چاوش رو همراه حدایه بسیار به خونش برگردون. پادشاه ایران هم وقتی هدایای گرامبه هایی رو که کشلک گرفته بود دید دختر خودش رو به اون داد و هفت روز و هفت شب جشن عروسی برپا کردند. اونا به آرزوی خودشون رسید و زندگی خوبی رو آغاز کردند. اون چی که شنیدید افسانه ایرانی اسماعیل چاوش بود برگرفته از کتاب افسانه‌های کچل به گردآوری محمد رضا شمس افسانه ها آدمی رو به سوی کشف هویت و استعداد ذاتی هدایت می‌کنند و بونها یاد می‌دن که برای تکامل بیشتر سرنوشت یا منششون چه تجربه‌هایی ضروریه هزار افسان کار مشترکی است از نویسنده و سردبیر زینت صالح پور ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوست صدا بردار عتیقه تیهكننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهی دیگر بدرو